مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و پانزده هم در بیان آنکه که ماسوالله هر چیز آکل آکلا معکول است همچون آن مرغ که قصد سید ملخ می کرد و به سید ملخ مشغول می بود و غافل بود از باز گرسنه که از پس قفای او قصد سید او داشت اکنون ای آدمی سیاد آکل از سیاد و آکل خود ایمن مباش. باش چی نمی بینیش و نظر چشم به نظر دلیل و عبرتش می بین تا چشم سر باز شدن مرغه که ان در شکار کرم بود گربه فرصت یافت او را در رو بود آکل و معکول بود و بی خبر در شکار خود ز دیگر. دگر دوزد اگرچه در شکار کاله است شهنه با خسمانش در دنباله است عقل او مشغول رخت و قفل و در، غافل از شهنست و از آه سحر او چنان غرق است در سودای خود، غافل است از طالب و جویای خود. گرهشیش آب و هوای می خورد، معده حیوانش در پی می چرد، آکل و معکول آمد آنگیا، همچنین هر هستی غیر اله و هوا یت کم بلا یت ام چو اوست، نیست حق معکول و آکل لحم و پوست، آکل معکول که ایمن بود زاکل کندر کمین ساکن بود امن معکولان جذوب ماتم است رو بدان درگاه کو لایت ام است هر خیال را خیال می خورد فکر آن فکر دگر را میچرد. تو نتانی کس خیال بارهی یا بخسبی که از آن بیرون جهی. فکر زنبور است و آن خواب تو آب چون شوی بیدار باز آید زباب، چند زنبور خیال در پرد می کشد این سو و آن سو می برد کمترین آکلان است این خیال وندگرها را شناسد زلجلال هین گریز از جوق اکال غلیز سوی او که گفت مایمت ما حفیز یا به سوی آن که او این حفظ یافت گر نتانی سوی آنها فس شتافت دست را مسپار جز در دست پیر حق است آن دست او را دست گیر پیر عقلت کودکی خو کرده است از جوار نفس کندر پرده است عقل کامل را قرین کن با خرد تا که باز آید خرد خوی بد چونکه دست خود به دست او نهی پس ز دست آکلان بیرون جهی دست تو از اهل آن بیعت شود که الله فوق عیدی هم بود چون بدادی دست خود در دست پیر پیر حکمت که علیم است و خطیر کو نبی وقت خیش است ای مرید تا از او نور نبی آید پدید در حدیبیه شدی حاضر بدین وان صحابه بیعتی را هم قرین پس زده یار مبشر آمدی همچو زر دهدهی خالص شدی معیت راست آید زان که مرد با کسی جفته است کو را دوست کرد این جهانو آن جهان با او بود وین حدیث احمد خوش خوب بود گفت المرآ مع محبوبهی لا کل قلب و من مطلوبهی. هر کجا دامست و دانه کم نشین. رو زبونگیرا زبونگیران ببین. ای زبونگیر زبونان این بدان دست هم بالای دست است ای جوان. تو زبونی و زبونگیر ای عجب هم تو سید و سیدگیر اندر طلب بین عیدی خلفهم صدن مباش که نبینی خسم را وان خسم فاش هر سیدی ز سیدی مخفل است دلبری می کند او بی دل است تو کم از مرغ ما باش اندر نشید بین عیدی خلف اصفور بدید چون بنزد دانه آید پیش و پس چند گردانت سر و رو آن نفس که عجب پیش و پسم سیاد هست تا کشم از بیم او زین لقمه دست تو ببین پس قصه فجار را پیش بنگر مرگ یار و جار را که حلاکت دادشان بی آلته او قرین توست در هر حالته حق شکنجه کرد و گرز و دست نیست پس بدان بی دست حق داور کنیست آنکه می گفتی اگر حق هست کو در شکنجه او مقر می شد که هو آنکه می گفت این بعید و عجیب عشق میراند و همه گفت ای قریب چون فرار از دام واجب دیده است دام تو خود بر برپرت چفسیده است برکنم من میخ این منحوس دام از په کام نباشم تلخ کام، در خور عقل تو گفتم این جواب، فهم کن و از جستجو رو بر متاب بسکل این حبل که هرس است و حساد. یاد کن فی جیدها حبلم مسد، صفت کشتن خلیل علیه السلام زاغ را کان اشارت به قمع کدام صفت بود از صفات مزمومه محلکه در مرید این سخن را نیست پایان و فراغ ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ بهر فرمان، حکمت فرمان چه بود، اندکی زسرار آن باید نمود. کاغ کاغ و نعره زاغ سیاه، دایمن باشد بدن را عمر خواه. همچو ابلیس از خدای پاک فرد تا قیامت عمر تن درخواست کرد. گفت انظرنی الا یوم الجزا، کاشکی گفتی که توبنا ربنا، عمر بی توبه همه جان کندن است. مرگ حاضر غایب از حق بودن است. عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود، بی خدا آب حیات آتش بود. آن هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همی شد عمر جو از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن خواست عمر غرق در بیگانگی در حضور شیر روبه شانگی. عمر بیشم ده که تا پستر روم، محل مفزون کن که تا کمتر شوم، تا که لعنت را نشانه او بود، بد کسی باشد که لعنت جو بود. عمر خوش در قرب جان پروردن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است، عمر بیشم ده که تا گه می خورم. دایی مینم ده که بس بدگوهرم. گرنه گه است آن گنددهان گویدی که از خوی زاغم وارهان. مناجات ای مبدل کرده خاک را بزر خاک دیگر را بکرده بلبشر کار تو تبدیل اعیان و عطا کار من صحبست و نسیان و خطا صحب و نسیان را مبدل کن به علم من همه خلمم مرا کن صبر و حلم ای که خاک شوره را تو نان کنی و ای که نان مرده را تو جان کنی ای که جان خیره را رهبر کنی و ای که بی راه را تو پیغمبر کنی میکنی جزو زمین را آسمان می میفضایی در زمین از اختران هر که سازد زین جهان آب حیات زودترش از دیگران آید ممات. دیده دل کو بگردون بنگریست دید که اینجا هر دم میناگریست قلب آیان است و اکسیر محیط اعتلاف خرقه تن مخید تو از آن روز که در هست آمدی آتش یا باد یا خاک بودی گر بران حالت تو را بودی بقا کی رسیدی مر تو را این ارتقا از مبدل هستی اول نماند هستی بهتر به جای آن نشاند همچنین تا صد هزاران هست ها بعد یک دیگر دوم به ز از مبدل بین وسایط را بمان که از وسایط دور گردی زسل آن واسطه هر جا فزون شد وصل جست واسطه کم ذوق وصل تر است از سبب دانی شود کم حیرتت حیرت تو دهد در حضرتت این بقاها از فناها یافتی از فناش رو چرا برتافتی زانفناها چه زیان بودت که تا بر بقا ای نافقا چون دوم از اولینت بهتر است پس فناجو و مبدل را پرست صد هزاران هش دیدی ای انود تا کنون هر لحظه از بد به وجود از جماد بی خبر سوی نما و از نما سوی حیات و ابتلا باز سوی عقل و تمیزات خوش باز سوی خارجی این پنج و شش طالب بحر این نشان پای هاست. نشان پا درون بحر لاست زنک منزلهای خشکی زهدیاد هست ده ها و وطنها و ربات. باز منزلهای دریا در وقوف وقت موج و حبس بی ارسو سقوف نیست پیدا آن مراحل را سنام نی نشان است آن منازل را نام هست ست چندان میان منزلین آن طرف که از نما تا روح عین در فناها این بقاها ها ای بر بقای جسم چون چف ای. هین بده ای زاغ این جان باز باش پیش تبدیل خدا جان باز باش تازه میگیر و گوهن را می سپار که هر امثالت فزون است از سپار گر نباشی نخلوار ایثار کن کهن بر کهنه نه و انبار کن کهنه و گندیده و پوسی درا تحفه میبر بحر هر نادیده را آن که نودید او خریدار تو نیست سید حق است او گرفتار تو نیست هر کجا باشند جوق مرغ کور بر تو جمع آیند ای سیلا شور تا فضاید کوری از شوراب ها زان که آب شور افزاید اما. اهل دنیا زان سبب امادلند. شارب شور آب و گلند. شور میده، کور میخر در جهان. چون نداری آب حیوان در نهان، با چونین حالت بقا خواهی و یاد همچو زنگی در سیاه روی تو شاد در سیاهی زنگی زان آسود است کوز زاد و اصل زنگی بوده است آن که روز شاهد و خوش بود گرسیه گردد تدارک جو بود مرغ پررنده چوماند در زمین باشد اندر غصه و درد و هنین مرغ خانه بر زمین خوش می رود، دانچین و شاد و شاتر می دود. زان که او از اصل بی پرواز بود واندگر پرنده پر و پرواز بود قال النبی و علیه السلام ارحم و سلاسن عزیز قوم زله، و غنی قوم افتقره و آلمان یلعبو بهجه حالو گفت پیغمبر که رحمارید بر جان من کان غنیان ففتقر و اللذی کان عزیزان ففتقر او صفیان آلمان بین المزر گفت پیغمبر که با این سه گروه رحم آرید ارز سنگید و زکو آنکه که او بعد از رئیسی خار شد وان توانگر هم که به دینار شد وان سوم آن عالم که در جهان مبدلا گردد میان ابلهان زان که از عزت بخاری آمدن همچو قطع آزو باشد از بدن آزو گردد مرده کز تنوا برید نو بریده جنبد اما نی مدید هر که از جام الست او خرد پار هستش امثال آفت رنج و خمار وان که چون سگ زه اصل کهدانی بود کهی مرورا هرس سلطانی بود توبه او جوید که کرد است او گناه آه او گوید که گم کرده است را. قصه محبوس شدن آن آهو بچه در آخر خران و تعنه آن خران بر آن غریب گاه به جنگ و گاه به تسخر و مبتلا گشتن او به کاه خشک که غذای او نیست آهوی را کرد سیاد شکار اندرآخور کردش آن بیزین هار را پر گاوان و خران حبس آهو کرد چون استمگران آهو از وحشت به هر سو می گریخت او به پیش آن خران شب کاه ریخت از مجاعت وشتهها هر گاه و خر کاه را می خورد خوشتر از شکر گاه آهو می رمید از سو به سو گهز دود و گرد که می تافت رو که را با ضد خود بگذاشتند آن اقوبت را چومرگ انگاشتند. تا سلیمان گفت کن اگر اجز را عذر نگوید معتبر بکشمش یا خود دهم او را عذاب یک عذاب سخت بیرون از حساب. هن کدام است؟ آن عذاب ای معتمد در قفص بودن به غیر جنس خاد زین بدن ان در عذابی ای بشر مرغ روحت بسته با جنس دیگر روح باز استو تبایع زاغ ها دارد از زاغان و جغدان داغها او بمانده در میانشان زار زار همچوب و بکره به شهر سبزوار